مصمم. بسم الله الرحمن محمد رجل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <الحمد> لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلت ولم يولد ولم, ولم و له یکولهو شریکن فی و لم ولي من از وكبره و کبر و و و على خیر خلقهی و اشرف سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین، عبل غاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علیه و, آله و سلم سیما ناموس دهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسكري المهدی ارواح اونا افراب مقدم مقدار فلا ان الله على اعدائه اجمعين الان لا قيام يوم الدين خب امشب شب چهاردهم ماه رمضان خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد آمین اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید همه ما رو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 خب آروز ما در این شبهای های نورانی ماه مبارک رمضان یه شرح خیلی کوتاهی بر موعظ و فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام نامه سی و یکم نهجل که شبهای قبل گفتم که این نامه واقعا سراسرش مملو از مطالب حکمتامیزه امیر المومنین راجع به حکمت میفرماید که الحکمت و ظالت المومن حکمت گم شده گمشده همه جا دنبالش می گرده و می که مومن اگه حکمت تو دست منافق هم ببینه میگیره مشرک هم میگیره مثل آدمی که همه تعبیر قشنگیه باید آدم اگه بچهش گم شده باشه همه جا دنبال میشه حالا اگه این بچه رو دست دزدم هم ببینه میگیره بچهش دیگه نمیگه که دست دوزده که گم شده شه گم شده ش حکمته. خاطر این مومن ترجیح میده که مومن ها خیلی نام کمن نون جو بخوره حکمت بدونه مثل عزاد امیر نون جو بخوره نمک بخوره اما سینش مالا مالا از حکمت باشه خیلی هم خدا از حکمت در قرآن تعریف کرده اولا گفته یوتل حکمت من یشا گفته من خودم به هرکی بخوام حکمت میدم بله مستعد میخواد حکمت گوهر پاک بباید که شود لایق فیض ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود به نظر هیچ... هیچ کشاورزی نمیده کبیر و شخم بزنه تو کبیر برز بپاشه چون میدونه این زمین استعداد نداره همه هم نفله میشه. حکیم میره زمینای مستعد رو پیدا میکنه برزش رو اونجا میپاشه خدا هم, هم اینطوره خدا در هر دلی نور حکمت رو نمیتابونه چون میدونه این نفله میکنه آدمای مستعد میخواد بعد خدا میگه اگر من به کسی حکمت بدم و من یؤتى حکمه فقط اوتیه خیرا دیگه میگه خیلی بهش من همیشه تو سخن کوثرم یعنی خیر کثیر. خدا حضرت زهرا رو گفته خیر کثیر حکمت هم گفته خیلی کسی. پیامبر میفرمدن انم مدینت الحکمه و علیون بابا ها. من شهر حکمتم دریای حکمتم علی بابشه چون می یکی از وظایف پیغمبر اکرم چی بوده؟؟ تعلیم حکمت یاعلم حول کتاب وله حکمه این نامه مملوه از مطالب حکمت آمیزه حالا من 5 تا برای امشب در دنباله فرمایشات امیر المومنین چون اینا پشت سر همه پنج تا موعظه سودمن برای اهلش اولین این است که ازرت میفرماید و تلافی که ما هم من سمتک ع رو من ادراک که موفاات من منطق اون دیگه این هم یه جمله روونش اینطوری میشه که جبران کردن تلافی کردن تلافی که جبران کردن اون چیزی که بر اثر سکوت از دست میدی آسون تر از اینه که چیزی رو که بر اثر گفتار از دست دادی بخوای به دست بیاری اینو در اهمیت سکوت فرمیدن اینکه آدم زبانشو کنترل کنه برای این وقت هیچی نمیگه یه منفعتی خدای نکرده از دستش میره و میره میگه خیلی که سخت یه خود فکر میکنه میبینه که باید میگفته. و میگه اما اونی که آدم بر اثر گفتار زرار میکنه تلافیش خیلی سخته میگن کلام اینطوریه دیگه یه تیریه که مثل که از شست از کمان خارج میشه میره طرف رو لطوپارو میکنه دیگه حالا بخوای اینو اصلاح کنی خیلی کار آسانی نیست. اما کسی که تیر و نن هر وقت لازم دونست میدازه چون <تصفيق> چیزی از دست ندازه دیگه میگه من من همه دستم آقا شلیک نکردم میگه من هر وقت لازم شد شلیک میکردم. اما اگه بیجا کسی شلیک کرد دیگه حالا بخواد اینو جبران رو داره تشویق میکند فسر به این که زبان تو خیلی کنترل کن. خیلی این چیز مهم میاد؟ پیغمبر میفرمودن اکثر یا ابن آدم تو لسانه. اکثر انحرافات بشر مال زبانش. الان رو این زبان من جلاب کرده دیگه این همه خبرگزاری ها نمیدونم این سایت ها اینها دارن دنیا رو لجنزار میکنن همین هم زبان خیلی معروفه که به لغمان گفتن که اون اربابش گفت برو یه گوسفندی رو لغمان حکیم بوده. خدا راجب او میگد لقد آتینا لغمان الحکمه من یه چیزی از لغمان نوشتم حتی این تو قرآن نیست حدیثه لغمان به پسرش میگف یا بنای شبیه فرمایش امیر این علی گفته اونم گفته حکیم بوده دیگه یا بنای قد ندم تو علال کلام لم اندم علال سکوت به پسرش میگه که خیلی پیش اومده من چیزی گفتم بعد پشیمون شدم اما تالا پشیمون نشدم چیزی رو نگفتم میگم خب فردا میرم میگم این تواجب مثلا من شما رو دیدم امشب چیزی نگفتم میگم خب زنگ بهش میزنم خیلی پشیمونی نداره اما میگه خیلی پیش اومده من یه چیزی گفتم بعد گفتم که کاش نگفته بودم این شبیه کلامه از... به لغمان گفتن که یک گوسفندی رو زره شو ببور، بهترین عضبش رو بیار، زبانش عمر. بعد اربابش گفت بالا این دفعه برو یه گوشفندی رو بکش، بدترین بازم زبانش عمر. بچه‌ گفت من میگم بت... گفت این زبان اگر اصلاح بشه جهان رو گلستان میکنه مثلا مثلا مثل زبان امیرالمؤمنین، زبان پیغمبر اکرم، زبان امام حسین دنیا رو اصلاح میگن اما اگر این زبان فاسد بشه جهان رو به لجنزار در دیل میکنه. اکثر خطا یا ابن آدم لسانه. من یه کتابی از یه مرجع تقلید خونمون دارم در مورد آفات زبان او میگه که زبان 80 تا گناه داره سی و چند تاش میگه کبیر هستی میویزه را جرم و هو جرم و هو کبیر این فضلی نداره ولی تا دلت بخواد زبان سرخ سر سبز بر بربار من در زبایت دیدم صبح به صبح اعضا و جواره بدن میان در خانه زبان مثلا پا به این گندگی دست نمیدون همه میان به این فسقلی چی میگن میگن تقوا رو حفظ کن ما رو به جهنم ننداز ما یک قیامت بسوزیم از شرط رو میسوزیم مثلا پا رو میسوزنن به خاطر گناه های زبان همه هم, هم دیگه مردم میتونم یه حرف نامربوط اینجا بزنم شما بلند شین منو له ولورده کنین خون و مالی از اینجا برام ببرن تا میچو پام بشکنه دستم به همه اینا کتک خوردم مال زبانه من یه،, یه حرف نامربود اصلا یه رئیس جمهور آقا یه حرف نامربود میزنه بین دو کشور جنگ میشه میلیون ها نفر کشته میشن یه چیزی بیجا میگه. به خاطر این اکثر انحرافات بشر از زبانه تا این درست نشه هیچ انسانی تربیت نمیشه این زبانش ولو نماز شب دخانه ولو همه سال و روزه بگیره اما این زبانش رو اسلام کنه درست نمیشه پس امیرالمومنین وقتی که میخواد صفات متقین رو در خطبه حمام بفرماید میگه هم اهل الفضائل من یه بار جمع کردم نزدیک صد ده ویژگی برای انسان های با تقباز اما اولیشو میگه منطق هم و میگه اینا زبانشون رو کنترل کردن سریع میگن ثباب ثباب با چی؟ صاد با سهی سنوخته نه ثواب با سه, سه نقطه یعنی پاداش ثواب با صاد یعنی صحیح درست نمیگه راست میگن آنه. ما ها نه ما چون وارد نیستیم من خودم اگه بخوام میگم میگم راستگویی منطق و صدق نه حضرت نمیگه راست میگن میگه درست میگن خیلی راستا اصلا گناهه معلوم قیوت وقتی میکنم راست میگم دیگه دروغ که نمیگم که میگم همون معصی یکی از گناه های خانمونسوزه راستگویی که خوب نیه درستگویی خوبه خیلی راستا سخنچینیه من راست میگم واقعا یکی سر شما اینا رو گفته ولی سخنچینیه دو نفر رو به جون هم مندازه معصیتی خیلی دروغ ها واجبه. خیلی دروغ ها عبادته. مثلا من به دروغ میام میگم که فلانی شما با هم شکرها میگم فلانی میگفت دلم برای یه جا افطاری باشه من این سیر ببینم. اصلا <تصحیح> <تصحیح> شما دلت نه. میگه با گفت میگم اومگه من دروغ که نمیگم همین بوزی قرده میره سراخش شیراخون زنگ بهش میزنم میگه منم دلم برای تو تنگ شده کجا هستی بریم هم دروغ میگه ثوابه چون آدم ها رو آشتی میده من تو روایت دیدم این کسی دو نفر رو آشتی بده از یک سال نماز و روزه بالاتر. یعنی این خیلی عبادت, عبادت. میتونمت منطق و, و ثواب اینا درست میگن درست یعنی که های دروغ باشه دروغ هم میگن که ببینن دروغ ثواب داره دروغ میگن اما یکی نه راست میگه سخنچینی میکند باید هم اگه بهش بگیم آقا این چه بود چون ما زدی آخه میگه آج آقا من دروغ نمیتونم بگن دست خودم نیدم تصویم آقا میکشه میگه من دروغ نمیتونم بگن خلاصه این جمله رو امیرالمومنین در فضیلت سکوت می فرماید و توجه ببنم می فهمد که زبانتو کنترل کن حالا ضرر نمی کنی اون چیزی که بر اثر سکوت از دست می قابل جبرانه بعد می که من اکثره احجره میگه پسرم کسی که زیاد میگه گناه زیاد میکنه از آدم پر حرف آقا هم زیاد میکنه حرف حسابی کمه حرف حسابی خیلی نیست که الان من به شما بگم آقا شما صحبت کن دروغ نباشه غیبت نباشه استهزا نباشه لغو نباشه چون قرآن میگه که مؤمن لغو نمیگه دیگه انه لغوه معرزون چیز بیفایده نمیگه مؤمن. اگه میگه فایده من میگم لغو نباشه دروغ نباشه قیبت نباشه استهزا نباشه تومت نباشه تراول میدم اگه شما بتونید خیل دقیقه هر حرف حسابی پیدا نمیشه که اصلا آدم میده طرف سکوت چی بگم چی بگم که فایده داشته باشه فایده داشته باشه بعد قیبت نباشه دروغ نباشه گناه نباشه معصیت نباشه چی بگم هی بگم حالتون چطور اون میگه که الحمدالله خوبی این بعض اینجوری دیگه یه چند دقیقه دیگه, دیگه میگه واجه نگفتی حالت چطور نگه به حضرت عباس ما خوبی یه قرآن میگه اصل حالت چطور میگم فر و اصلش خوبه دوباره یه دقیقه چی بگه خواه بینید توجه ببین یه آقایی میگفت خدا تو قرآن هم گفته خدا گفته لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین بینید چه ادعایی به قرآن کرده گفته جمله شما بیدانه میکنیم برای سعادت بشر مفید باشه من تو این کتاب نگفته باشه میگه اینه هرچی حرف حسابی بوده میگه من گفتم انقه شده قرآن درش می نویسن این میشه می اگه قرآن رو بردارم مثل روزنامه مثلا اطلاعات بنیزم یه صفحه اطلاعات هم, هست. هم دیدیم بعضی ها پوستر کردن میگه کل قرآن رو قاب میکنن کنم می یه پوستر یعنی به اندازه یه صفحه روزنامه اطلاعات کل قرآن من یه دفعه نگاه کردم از ب بسم الله تا سین ناز همش از یه صفحه خدا میگه من دیگه همچی حسابی بود گفتم اینگه شد یا آقای بود من مدتی شاگرده ایشون بودم میگم من قم می میخوندم شهر لمعه این کتاب های بزرگ خیلی، یه صفهش هم کل قرآنه مصم داره هاشیه دارد خیلی هم ریزه دو جلده هم هست گفت لمعه میخوندم ما در بزرگم هم میگفت، سواد نداشت سواد قرآنی داشت قرآنو رو میتونست بخونه مفاتی رو میتونست بخونه قدیمی ها خیلی مومن بودن ما هم داشتیم از این پیر نورانی پیر نورانی اینا ثبات نداشتن ولی کل قرآن رو بی غلط میخوندن مثلا موجز بود اصلا هیچ ثبات نداشتا ولی بول اصلا با چه سرعتی قرآن رو میخوندن مفاتی رو میخوندن ولی الان متاسفانه چون ایمانا کم طرف دکتره قرآن رو نمیتونه بخونه. <تصفيق> خیلی عجیبه مثلا انگلیسی رو مثل بلبل صحبت میکنه ولی قرآن رو از رو نمیتونه میکنه این برای که ایمانا ضعیف شده اینو از اینا بود که سواد قرآنی داشت گفت اومد قم منو ببینه اومد حجره ما گفت سوادی که این لمعه رو برداشت و وا کرد آبران چرا سنگین بود لمعه وا کردید ذره رو گرفتید آشب گفت پسرم هیچ چیزی بهت میگم به بر نخوره گفت نه بن بر گفت تو این کتاب نباید خیلی حرف حسابی باشی و اصلا ما این رو حفظ میکردیم اصلا همه رو از بر میکرد گفتن چطور؟ گفت ناراحت نشو خدا میگه من چی حرف حسابی زدم تو این قرآنه این انقدر گفت حرف حسابی انقدر زیاد نمیشه این معلوم قاطی داره <تصفح> <تصفح> حرف حسابی نمیتونه انقدر بشه خدا میگه من احمدشو گفتم ببین که هم درشته هم زربین نمیخواد من می نداره قران این نامه کو اون رو به ما خیلی برقدمون سواد نداره میاد میگه اینجا حرف حسابی هم نی میگه بعد ها که مجتهد شد دیگه بعد ها بعد ها که دیدم پر خوب گفته حرف حسابی زیاد نمیشه بعدین حضرت همین میگه کسی که زیاد میگه لغزش هم زیاد میکنه پر عرفی توش لغزش زیاده اگر میخوای لغزش نکنی کم بگوی کم گوی گزیده گوی چون دور تا زنده که تو جهان شود پر قرآن این کم گفته همه دنیا رو گرفت حافظ کم گفته حافظ با اون قدرت شعری که داشته 400 تا قضر گفته یه ام یه ام 400 تا قضر ولی جواهر گفته الان هفت ساله سال همه جور تفسیر کرده اما آدم از آقا در عرض یه ماه اون 4 پنج تا کتاب شعر میده همه ره دیگه اصلا کی میخونه اینا رو اصلا چاپ میکنه میذاره اونجا اصلا یه بار اینا خونده نمیشه اگه شما یه بارم بخونیم میگه حیف این عمری که ما گذاشتیم اینا رو بخونیم اما حافظه ببینید چه آره. چی میگن ها چون کم گفته میگه اونی که زیاد میگه چیزای ارزشمند نمیگه اونایی که چیزای ارزشمند گفتن کم گفتن 400 تا غزل با اون قدرت شعری حالا با اون توانایی یکی اومد پیش میرزا اسمایی دوره مدداه بود جوانم بود اومد گفتش که من میخونم سوز ندارم گفت خوبه کسی گریه نمی منو من نصیحتم کن من چیکار کنم صدایی من سوز داشته باشه میخونم کربلاشه نیرزام شوخ بود دیگه خیلی خوشمشرف بود گفتش که من الان بگم تو عمل نمی کنی گفت به حضرت عباس عمل میکنه. کنم گفت دیگه بیچاره شدم به اینجا هم رزیده نگه سندم نگاه می کنم. گفت نه میدونم دونم عمل نمی کنی کلام من نفله می شید مومن حکمتو بر آدم مستعد میگه. <تصفيق> خیلی دیگه من خدا بگو آقا تو رو به حضرت حباس بگو راش چیه؟ گو اگه میخوای سوز پیدا کنی کم بخون سالی یه بار بخون گو آتیش میشه ولی تو تا شب نشده سجا قول بگم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> میخوای سوزم داشته باشی؟ اگه آخا... من اگه ماهی سخن را کنم میدونم ها بسم الله بگم اصلا قیامت میشه چون خودم خماری کشیدم در. پدرم درم نگفتم خیلی سخته چون یه نفر میخوای شکنجه بدی یه واعز دعوت کن بلنگو بشنه اگه میخوای چار پنگ کلو وز کم میکن خیلی سخته واعز رو اینجا دعوت کنی بشونی بگم آره تو استفاده کن توکلی میریم. می اصلا خود چاقو بزنی خونش در نمیاد مثل برج چیز اونجا میگه. از اگه بشینه بلند میشه قهر میکنه میره خدا اگه میتونه یه ساعت بشینه گوش بده تا صبح میگم چند بار تا مرز سکته میده خیلی سر. شما یه مدا ها دعوت کن بلندگو بشنه حالا من یه سال نخونم اصلا صحبت نکنم دیگه بسم الله بگم وقعا فکر میکنم کنفای فا یک کن کم بگو آتیش میشه تو زیاد میگی حرفات ضعیف میشه آدمی که زیاد میگه ضعیف میشه بعدم حسابیاتم کم میشه میگه اونی که کم میگه جواهر میگه کم گوی گزیده گوی چون دور درم از سعدی میخونم در کلام حضرت امیر که من اکثره اجره اونایی که زیاد میگن ضعیف میگن الان محتشم های این ترکیب بندی که گفته با این قدرت شعری که این مرد داشته 400 سال تمام کتیبه های ما رو برکرده بسن دیگه مگه اینو یا که تکرار کنه این چه شعورش هست <تصفيق> از آب هم مزایقه کردن کوفیان چه کار که چقدر اینو خونده شده هر بار میخونی آتش بکنه چه چرا فوندن 400 سال دیگه دلران همش میخوان اینا رو که کم گفتاره اگه این برمن داشت تو عرض یه هفته آقا سه چهار جلد میداد دیگه این نمیشد که اینم دو... اینم یه جمله دیگه از امیرالمومنین بعد فرمودن که و من نمیدونم پنج جمله صدا یکی دیگه شم هم بخونن امشرف. و من تفکر اپسره میفهمد کسی که کم صحبت میکنه فرصت پیدا میکنه فکر کنه کسی که زیاد صحبت میکنه اصلا وقت نداره فکر کنه پس همهش میگن چه کی فکر کنه یکی وقت جلو پیغمبرم هم, هم اینجوری بود مدام میگو تا پیغمبر میخواستید حالا من میگم به سبت روز صحبت می تو پیغمبر می‌خازیم گفتش یا رسول حرف زیادت نرو حرف اینو گوش بده اینو گوش بده بابا بابا بابا بابا بهسا اون بگه اون جواهر میگه تو بعدن میری او حسین قرب میگی بابا مثلا بگه او دیدین بابا اینج اگه هم یه جا ساکت چه دیگه شما اینقدر گفتین از اون رفته شما هی ادامه میدید ادامه می یه در دل... اما مثل شیر وایزاده کلامت تا اون شد حمله کرد دل... بچمون به قادر این اینا حالا یه اخلاقی که دارن شما داری صحبت میکنین گوش نمیده داره فکر میکنه چی بگه. مو با بابا یه خورده گوش بده. به این وقتی حرف میزنه میینه جواب این با حرفش شما میگه آقا من چی میگم تو چی میگی. آقا بذاریم این کلام من منعقد بشه بعد تو بگو. چون همش میخواد بگه. جلو پیغمبردی از اینا اومدن. اینا عمر کلاف با اون اخلاق اون اخلاق که این نکل علا خلق عظیم اونو کلا فکر حضرت فرق بودن که فلانی تو میدونی چرا خدا وقتی میگه لسانن پشتش میگه و شفتین <تصفيق> لسانن و شفتین اما وقتی چشمو میاره پلکو نمیگرد علم نجعل بذاره آیار کار علم نجعل لهو عینین میگه ما دوتا چشم شما نبیدیم دیگه پل کنیم و لسانن و شفتن لب میگه زبان به شما دوتا لب هم به شما داریم میگه میدونی چرا بعد از لسان لمم هم این گفت من تا الان به این فکر نکرده بودم قیامبه بس که تو میگی با تو وقت نداری فکر کنی گوه یه خواهد کم بگو یه خواهد فکر کن تو همه عمرت میگی بقیه هم خوابی یا میخوریم بعضی دیدین آقا دست با آدم میدانم وحشت میکنه چون یه ساعت معطلی من نمی‌دونم. بعد دستم هم ون هی کنه ای میخوایید بکشونی که لفته میگردشت ای با بازه با بریم میگه نه اینم بگم آقا می‌دونم میدونم عجله هم داری جلست هم دیر میشه آخو با بازه بریم دست دو گرفته هی میگه که میدونم که دیرت شدا اینم بگم اینم بگم اغا دارت اینو میفرماید گفت میده تا... گفت من طالب این فکر نگو گفت بس که میگی بعد فرمودن خدا دو تا لب به تو داده اینا رو به هم بدوزی ولی شو اینقدر نگو این زبان رو کنترل کن لب داده که زبانو کنترل کنی برای چشم چشمم داده پرک داده دیگه شما هیچ سری ببینی ببینین چشتو میبندی داده ولی اسمشو نمیاره میگه واسه اونم داده ولی نمیگه که من چشم دادم دوتا پلکم دادم اما در مورد زبان چون مهمه که این ها به هم دوخته بشه ره. بعد میفهمد یه فایده یه کسی که کم میگه اینه که وقت پیدا میکنه فکر کنه کسی هم که فکر کنه بصیرت پیدا میکنه راهو پیدا میکنه بصیرت بصیرت خیلی مهمه از بسر بالاتره بصیرت اینه که آدم چشم ظاهر داره بسیرت اینه که آدم چشم باطن داره این چشم با حق و باطل تشخیص میده الان بعضی چشم ظاهر دارن اما حق و باطل تشخیص نمیده خودش میاد میگه میگه ها آقا من دیگه گیج گیجم اصلا دیگه نمیدونم حق با کیه این یعنی چی این یعنی خودش میگه من دیگه بسیرت ندارم اعتراف به این که من ب... هرکی گوه آقا من دیگه حق و باطل رو نمیتونم تشکیز بدم یعنی من بصیرت ندارم بصیرت چشم دله که آدم حق و باطل رو تشکیز میدونی یکی آمد پیشه می... هستم دیگه پیشش گفت من صبح که میامدم قصد کردم بیام در رکاب شما شهید شم اما اینجا که اومدم پام لقزید گفت چرا؟ گفتیدم شما صحابی پیغمبر زبیرم صحابی پیغمبر شما پسر اموشی اون پسر اموشی گفتیدم این بر فاطنی زهرا اون بر آیشه اون ملمومنی اون همسر پیغمبر این دختر پیغمبر دیدم این بر امار یاسه اون بر تلهه این بر کی؟ اون بر... بعد دیدم شما نماز جماعت میخونی؟ اونا هم دیدم شما حافظ قرآن اونا نماز. ما با پیغمبر اینجوری جنگ نمی رفتیم ما به جنگ بطپرستان می رفتیم قسلم می کردیم شهیدم می شدیم چون به جنگ مشرکین می رفتیم شما ما رو بردی جنگ نماز شب خونا پیشونی پی, پی نبسته ها گفت دیگه من اصلا حق کیه با حضرت فرموندن این نکر رجالون ملبوس ملبوس گفت تو یه آدمی هستی که بصیرت نداری باطل آوردن لباس حق تنش کردن تو هم گیج شدی با... ملبوس دیگه باطل آوردن لباس حق تنش کردن باطل آوردن حافظ قرآنه مثل ابن ملجم مرادی باطل آوردن اما نماز خونه باطل آوردن اما نمیدونم روزه رجب میگیرد تو هم نمیتونی بصیرت نداری نمیتونی تشخیص بدی بعد فهمیدن که برادر من حق و باطل حالا ما عربیشو نمیخونم میخوام دیگه رو جمع کنم حق و باطل رو با شخصیت ها نمیشناسن من هیچ وقت فهمیدم حق و باطل رو مگه این ثوابه پیغمبره آقا بعضی این بعضی هم میگن آقا اصحاب پیغمبر آدم درستی بودن بعد مینن دو تا صحابی گلاویز شدن میگن آقا ما گیت شدیم میگم من ما دیگه نمیم من میگه دیگه مغم نمیکار نمیکنه هنگ کرد میگم چرا میگه, میگه دوتا تا صحابی دارن به قصد کشت دیگه رو میزن من میگم حافظ قرآن ها آدمای خوبی اند بعد دو تا حافظ قرآن سر مال دنیا درگیرن میگه من من دیگه هنگ کردم میگه مده آدم های ها. دو تا دوتا مده گلاویز شدن واعزا دوتا واعز مجتهدا دوتا مجتهد گفت حق و باطل اگه اینجوری بشناسی هم مثل تو میشی گفت اعرف الحق تعرف و احلا از این شاکار های گفت برا حق رو بشناس ببین کیا دورش جمع شدن اونا اهل حقن. نصرانی هم بود چربلا اینجوری اون چربلا این شباز امام حسین بشناسی بعد ببینید کیا دورش جمع شدن ببینی عبدالله وحب نصرانی هم هست حقه ظاهی رفن قین هم هست حقه حر رفن یزید ریاهی هم هست یه اصلا سخت نیست میگیم آقا هر کی پشت سر شما برو قدیر خم و بشناس ببین کیا پای قدیر خم بایی شدن اونا حق هم. حالا اگه دیدی یه آدمی که نماز صوبش هم قضا هم میشه پشت سر علیه حقه حالا نمازش قضا میشه گناه کرده حق و باطل آقای اون به گناه نیست ببین ما پشت سر اماموسی نیم حقیم اون یه بقیه نمازمونم قضا میشه باطل نمیشیم که گناهکار میشیم باطل نمیشیم ما چربلا بودیم جونمونم برای اماموسی میدادیم کمان کمان دارم واسه حرمش میدن الان؟ جوان هست آقا برای حرم هست زینب جونشو میده این, این اگه بود میذاشه آقا کسی به زینب تازیانه بزنه کسی پا حرم وای میسته کسی در حضوره این میتونست بیاد زینب رو اسیر بکنه به خدا من همه اینا نبودن اگه اینا بودن کی میتونست خانه فاطمه زهرا رو به آتش بکشه آ اینو به حرم کسی کچ نگاه کنه تا برسه کسی بیاد هیزون بیاره خونه یه لات نبود تو مدینه بگه آقا گناه داره نزن، نکن چه سایده میکنه اصلا ما نمیگیم اصلا هست زهراب بگو آقا زن و جلو شوهر نمیزنه اوه جمعون مردیت کجا رفته یه آقا نکن نکن اصلا یکی ن... یه جمله داره میگن که هر طرف واورد شیخ شوشتری میگه میدونین چرا امام رضا میگه جد ما رو مثل گوسفند کشتن <تصفيق> شیخ شوشتری یه حفت توجی میگه یکیش همین کلام صحبت من شد حفت توجی میگه میگه اگه شما از این حسینیه بری بیرون ببینی که یکی یه یک گوسفند و خابونده داره سر میره اعتراض نمیکنید چون میگه شاید زاو دارن شاید خونه رو تازه خریدن شاید عروس دارن میارن شاید داماد دارن میارن اصلا هیچ اعتراض نمیکنه اصلا شاید میگم میخوام فردا نذری بدم برای امام مثلا اما اگه از این در بری بیرون بینی یکی یه گربر رو میخواد میری جلو میگه آقا گناه داره نکن با. اصلا معرفیش میکنن امین آباد میگه نه این قاطیه واقعا با, با، این گربر و خاونده میخواد سرشو ده نفر میان دستشو میگیرند حتی سگو خوابونده میخواد سر بگورش ما شما میگه آقا نکن گناه داره هلش میدن اون بر میگه چرا میگه حسینو میگه چون یه نفر نگفت گناه داره <سؤال> آقا بگی پسر پیغمبر آقا سرشو نبغ آقا پسر پیغمبر همه روی شده همه هفت میگه بعد یه روز آشورایی باشه حقش اداشه ها ام ام اینجوری آدم نفله میکنه کلامو این کلام خیلی عرضشمنده یه در دیگه شو بگم. میگه ارجا گوشفند و کشن همسایه ها خوشحال میشن میگه یه خرده گوشتم به ما میدن. یه می شما میده تمام این همسایه ها خوشحال تو اونجا هم میکشتن هم شادی میدون یکی میگفت انگوشترشو من میبرم یکی میگه عباشو من میبرم یه دونی میگه هر جا گوسفند میکشن مجلس مجلس شادیه یا عروس آوردن یا از کربلا اومدن با دیگه بمانه داریم میتوجه بفهمه حضرت فرمودن اعرف الحق تعرف و احلت. تو برای حق رو بشناس حق رو بشناس تو قدیر خم رو بشناس امامت رو بشناس امامت رو اینی تار کنفیک و مستقلی کتاب و اطرتی رو مصادیقش رو بشناس بعد ببیند چیا دورشتی هم شدن اصلا آسون میشه دیگه نمیه آقا اون وردیدم یه ثوابی پیغمبر اون دیدم ریش داره اون دیدم حافظ قرار ریش داشته باشه آقا رو سینه ما موسی نشسته <تصفيق> ریش داشته باشه نماز شب بخونه ریش ابو عبدالله گرفت آسون میشد براد برادر هر کاری کرد آقا اینو نتونست بفهمونه که اینو میگم بسیرد میگه کسی که فکر کنه بصیرت پیدا میکنه. یه فکر فکر آقا خیلی سختنی. امام حسین یه جمله روز عاشورا گفت. اگه یه ذره فکر می‌کردم تموم فهمودن مردم ببین گوشم که نمی‌دادند. اما بالاخره اینا رو بادار کرد گفت: "آیا پیغمبر شما در مورد غیر من و برادر من در مورد کسی گفته که اینا سید جوانان بهشتند؟" اصلا ببین خیلی پیچیده نیست ولی به شرطی که هو نکنی حجب نکنی فکر کنی این به جای که گوش بدن هو میکردن ها هو نکن حجب نکن میگو من که نمیگم منو نکشی. <تصفح> <بشناسینو بکشین. تصفح> رو نکشین بشناسین و بکشین یا بزرگی بوده ما. بفهم بفهمین چی رو کورانه ناید نگیم به ما بودن خارجیه نه خارجی نیستم سید جوانان بهشت و آیا پیغمبر شما در مورد غیر من و برادر من در مورد هیچ کس گفته اینا ثیگه جوانان بهشتن گفتن نه یا نه ای پر رسول الله کاغذ برجی شما ببین نمیگه امام حسین آدم خوبیه میتونست بگه ان الحسین اگه اینا رو میگفت یه ممکنه یکی بلند میشد میگفت تو آدم خوبی بودی زمان پیغمبر الان چپ کردی معیار حال فعلیه نه میبین بگیم پیغمبر گفته من بهشت میرم آخر کارو گفته تو بهشتم از همه بالاترم سیدم دیگه ببین رأس همه بهشتی الحسن و حسن بعد شبه امام حسن هم هست دو تا برادر چقدر قشنگه شما شبه بگی جانم حسن جانم حسن هم اسم امام حسن رو بیرم اسم امام حسن چقدر فاطمه خوشحال میشه بگی پیبی جان ما هم حسن رو دوست داریم ما از حسن رو می چه جمعه دی <تصفح> ای کسی هم از تو شما این حدیث رو نشنیده الان اصحاب پیغمبر هنوز زندن در دست رسد گفت برین از جابر ابن عبدالله انصاری بپرسی اینا سعاوی پیغمبر خود پیغمبر رو دیدن از زید ابن عرغم بپرسین از کی بپرسین همه رو اسمی برد گو ببینا چقدر شنیدن که من سید جوانان بهشتم گو حالا میشه کسی منو بکشه بهشتم بره خیلی پیچیده نیست که یه ذره فکر میشه آقا کسی سید جوانان بهشتو بکشه که چیلوین عمر صد میگفت یا خیلی الله ارکبو و بل جنته ابشروا اینا شعارهای دینی هم میدادن همین عمر صد میگفت لشگریان و خدا سوارشین بهشت منتظر شماست مثل این چیزایی که القاعده و داایش رو اینا میکن بهش نظرر کیه؟ یعنی منو بکشین بهشتم بریم گفتب حالا میخوای منو بکشین بکشین کارو رسون به چهخایی که آقا؟ این نامردی که اومد تو گودار فرمایش آقا رو گرفته بود گفتسه جان من میدونم هر کی تو رو بکشه محاله به شپاعتت پیغمبر بردارم. و محال دیگه روی بهش رو ببینه ولی من این کارو رو این یعنی چی یعنی من اعتقادی به اون چیزا ندارم بله اگه قیامتی باشه ما باختیم ولی کی قیامتو ما نقد رو نمی دیم به نسیه گفت، جایزه هایی که یزیب به ما میده ده از تر از شفاحت خب این نقده همین فردا می به حساب اون الان چی دیده اصلا راست باشه دو گفت من این کارو میکنم بله راست میگی تو سید جوانانه ب... اما اگه بهشتی باشد میکنم. این معنیشی نست دیگه بلا کی میاد اومد به خاطر اه... این آمد همین آدم آمد به ابن زیاد گفت تا رکاب اصف من طلا بریزی نقره بریزی جواهر تا رکابش پرشه گفت چطور گفت من چتی رو کشتم که او سید جوانان بهشت مادرش سیده نسا آلمین بود. جدش سید انبیاء و مرسلین بود پدرش سید اوسیاء مرزیین بود ازنو. این قدرش آدم احمد اگه اینجور بود چرا کشتی گفتم من برای جایزه های امیر و مومنی نیزید کشتم گفتم سیویل من رو چهارت میکنم گفتم یه خوش خدمتی بکنم این میگرد من در از این پنج جمله چهار جمعه شو گفتم من تفکره اب سره میگه یه ذره فکر کنی بسیرت توشه میشه آقا کسی را جمعه کنید یه ذره فکر کنید حسین را نشناسد میشه آدم یه ذره فکر بکند امیر المومنه دیگه وقت خیلی گذشت امشب میخوام دلاتون رو ببرم در خانه قاسم ابن الحضر شب شبه یتیم نوازی من یقین دارم آقای اینه که میگن یقین دارم اون محبتی که امام حسین به یتیمای امام حسن میکرد به بچه های خودش نمیکرد اونقدر که به قاسم محبت میکرد به اکبر میکرد نه خودشون گفتن اینا گفتن جلوی بچه یتیم بچه خودتو بقل نکن خیلی مردونگی ها اگه یه بچه یتیم دیدی آقا بچه خودتو بوس نکن اون کز میکنه اونو بغل کن بچه خودتو زیاد بغل کن اینا انقدر آقا به قاسم امام محمد به عبدالله محبت میکرد یک دهام اونو شاید علنی به اکبر نمیکن میگو اینا یتیمن کز میکنن خب محبتا هم به یکی کنیم چی میشه آقا محبت ایجاد به یه علاقه عجیبی بین این عمو برادرزاده برادر زاده بود عجیبه هم قاسم خیلی اماموزه هم امام حسین قاسم من سند دارم وقتی اکبر اومد گفت برم میدون اصلا تا گفت برم گفت برو بذارم برو فقط یه کلام گفت گفت برو زنای حرم سیر ببینه اکبر هم اما وقت قاسم اومد حضرت یه نگاه معیوسانهی به قاسم کرد از رو ناامیدی گفت نه اونم اجازه میان گفت تو برادر زاده منی من سراغ تو رو نمیتونم داغ تو رو نمیتونم درم گفت تو با اکبر فرق ده اکبر رو من با داغش کنار میام اما داغ تو رو من نمیتونم تامنه کنم میگه،, میگه اونو میتونه بس که به اینا محبت میکن بعد منم هم میگم شما به برادرزاده هر چقدر محبت کنی اونجوری که پسر رو بابا مسلطه و حرفش رو میتونه بزنه برادرزاده نمیتونه به عمو بگه همیشه یه ای بین برادرزاده و عمو هست اکبر اصلا نگران نبود کربلا جا بمونه میگم من میگیرم <تصفيق> دیدین آقا بچه گایی میاد با قلداری از باباش میگیره میره بسنه دیگه راحت میتونه اما برادر زاده اینجوری نیه قاسم همش نگران بود کربلا جا بمونه همش بقیه شب آشورا خیمه پر بود وقتی که امام فهمدن برین هیچکی نرد چراغال هم خاموش کردن نرد امام یه جمله گفت گفت حالا ای اینایی که موندن تو این خیمه فردا همه شهید میشن اکبر اصلا نه نگران شد نه سوال کرد ایچه براش شدن اما قاسم نتونست نگرانی شد که کنه یعنی این سیزده ساله بلند شد گفت امو جان منم شهید میشن گفت قولو بگیرم دیگه شب با خیال راحت بخوابن. گفت خب گفته دیگه تو هم تو جلد تو هم تو خیمه گفته دیگه امام یه نگاهی کرد گفت ممکنه این بد معنی شه مثلا یه واعظی یه مردایی آخر زمان بیاد بگه قاسم از ترسش گفت گفت نکنه کار به بچه هم بکشه نگران از رو ترس میگفت بگی گفتی دیگه امام برای که این بد معنی نشه گفت برادر زاده تو جواب میدم ها. اما تو اول به سوال من جواب بده مرگ در نظر تو چگونه است؟ خوب من بگو بذار تو کتابا بنویسن از ترست میگی یا از رو میگی زودم گرف قاسم گفت احلا من الاسر خب اصرم برای من اینقدر گبارانی در رکاب تو تیکه تیکه بشه امام مال قاسم و چربش کرد جبونا نظر این نفله بشه هیف شب شبه قاسمه به خدا جوانا نو جوانا نداریم نفله گفت برا درزاده تو هم شهید میشی ولی مال تو بعد از بلای عزیز نمیدونی این چی؟ یعنی هیچ که رو مثل تو ننی تو رو سخت نیست شاید عزیز این استفاده بشه روز آشورا ایشتی مثل قاسم سخت شهید نشد حقش ادامی میشه. همه شنیدین رو بدن امام موسین اصد دوندم اما چی دوندم وقتی روح نداشت سرش را جلده بوده دردش نمی اومد اگه ما گریه میکنیم میگیم به این بدن احانت شد اما اون بچه که زنده زنده از پا رو بدنش دیدن هی میزد می عمو. همه اشتخونام خوب یه یخ... خورد روزه رو ادامه بدم یه ذره خدا رحمت کنه شهید قلامدی رو شهیدم شد میگو قاسم وقتی شنید که تو هم شهید میشی مالا تو بعد از بلای عظیمه گفت اینقدر خوشحال از این خیمه اومد بیرون اکبر رو پیدا کرد اکبر پسر اموشه گفت اکبر فردا چه کاره ای گفت من که تا آخرین قطره خونم با... گفت این دو تا برادر زاده دست دادن با هم پسر امو دست دادن گفتن تا آخرین قطره خونمون از حق دفعه قاسم دید اکبر خیلی راحت رفت تموم شد اصلا تا گفت برو امون گفت تا گفت برو گفت برو, برو پسرم من هم همینطوری هم دیشت با آقا همه کردیم با امو. خیلی بند خدا فارق و راحت اومد گفتش که من و اکبر با هم عهد بستیم اکبر رفته امون جان دیگه نوبت من هم. همین جمله که یه دقیقه بیر گفت نه من تو رو نمیزن آخ آخو. کار گرفت. خودشو انداخ رو دست و پای عمو. هی دستشو عمو جان شما دیشب به من قول بارد. هی پا من همیشه میگم جایم هم ندیدم زبونام شاید زنای حرمم به حال این بچه گریه می کرد. می این بچه التماس می عمو راش نمیره. بعضی میگن هر کاری کرد اومد تو همین خیمه‌ای که مال قاسم بود زانوهاشو بغل کرد های های گریه می کرد. مثل بارون گریه میکرد مادرش اومد نجم خاتون گفت پسرم چشماتو گریون نبویدم چی شده؟ چرا گریه میکرد؟ چرا بلن بلن گریه؟ گفت همه بابا داشتن رفتن شهیفتن من یتیمم امو اصلا اعتنال میکرد بعضی میگه عجب مادری بوده میگن این بازوبندشو باز کرد گفت این مال همچین روزیه دست خط امام حسن رو در آمویه گفت ببر اگر امام حسین خط باباتو ببینه دیگه چوباتو نمیده برادردارا وقتی چشم امام حسین به خط امام حسن وشار دید بهشته حسین کربلا قاسمو از طرف من ببر منو جلو مادرم روسفی اینجا میگن این برادر زاده و عمو همدیگر رو بغل کرد اینگر تو بقل هم گریه کردند، هر دو از حال رفتن و قاسم از یه طرف افتن سلالله فالیش یا عباد سلالله فالیش